والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآلہ الطيبين الطاهرين. الله مسجد على ميلادة حضرت مجت. صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک می و این بحث آغاز می بحث ما درباره آشنایی با مبانی فقهی آقا و بحث که من انتخاب کردم در محدوده دلیل قرآنی و ما معمولا وقتی روشی فقیه میخواهیم بررسی کنیم این مبانی این فقیه و نحوه تعامل این فقیه با ادله، فی نفسی بررسی میکنیم و گاهی با مقایسه با مبانی سایر فقیهان. ما فعلا در مرحله اول و وقت اجازه نمیداد که ما مقایسه میکنیم بین مبانی آقا و مبانی مبانی سایر فقهای معظم در چند نکته ما میتونیم تأملی داشته باشیم در مبانی عزت آقا و نحوی تعامل ایشون با دلیل قرآنی مستحضر هستی معمولا سهم دلیل قرآنی در فقه خیلی پایینه و تناسب ندارد با جایگاه قرآن به عنوان سقل اکبر این یک حقیقتی یک واقعیتی من نمیخوام بگم فقها ها قرآن اهمیت نمیدن تو نمیشه هر مسلمانی چی میرسه به فقها حتما به قرآن اهمیت میدن ولی من میگم به حد مطلوب نیست ما میبینیم روشی استنباط و استدلال مقام معظم رهبری در مطالب فقهی گوناگون نسبت به دلیل قرآنی است یک واقعیتی دیگری هم هست مباحث آقا خیلی زیاد نیست یعنی مباحثی که چاپ شد و در دست ما هست بده مباحثی هست ولی به چاپ نرسیده متاسفانه حدوده نمیدونم پونزه سال پیش به این جانب پیشنهاد دادن که یه مقدار از این مباحث کار کنم و آمادش کنم برای چاب متاسفانه فرصت نبود و این فرصت تلائی از دست ما رفته و هنوز منگه به چاب نرسیده مباحث جهاد مخصوصا وا. وا. یکی از مواردی که ارتباط دارد به نحوه استفاده از دلیل قرآنی نسبت به تحلیل واژگان تحلیل واژگان یه مسئله بسیار مهم بالاخره قرآن دلیل لفظی متشکل از مجموعه از واجگان هم خود واجگان برامون مهمه هم ترکیب و سیاق آیات برامون مهمه نمیشه به این آسانی از تحلیل واژگان اوور کنیم ما میبینیم مقام معظم رهبری در این مسئله خیلی انایت خاصی دارد نمیخوام میگم دیگران ندارن فقط میگم ایشون انایت خاصی دارد حال برای اثبات این ادعا چیه؟ چه چی نمونه خدمتون مطرح میکنم؟ نمونه اول تفسیر واجهه الكتاب. بمناسبة بحث أهل الكتاب در كتاب الجهاد وقت مرس بإن آية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا للجز عيدي وهم صاغرون هنا آياء بعده سورية التوبية آية بيستو نو جوا جي كتاب أمداء من الذين أوتوا الكتاب بحث الجزية وأحكام مربوطة بكتاب الجهاد خب إن أوتوا الكتاب باید ما معنای کتاب مشخص کنیم و این واجه واجه کتاب در قرآن مکررن اومده و معنای کتاب روشنه کتابی که بر انبیاء و پیغمبران از طرف خداوند متعان نازل شد این اصطلاح قرآن حالا من نمیدونم در کتاب قبل از قرآن باز هم همین واجه آمده یا نیامده، قد متقن در قرآن آمده، اما مثلا در تورات و انجیل و این واجه آمده یا نای آمده من بحث کردم ولی در قرآن این واجه نسبت به تعالیم و احکامی که بر بیغمبران نازل شد به این مجموعه گفته شد کتاب الکتاب لذا کتاب در مقابل ادیان غیر الهی در مقابل پتفرستان در این سیاق اومده بله مقام معظم رهبری بری اونجا چند نکته مدرح میکنه نکته اول ایشون ادعا میکند که واجه کتاب به تنهایی اگر اومد یه معنایی دارد اگر به صورت ترکیبی، ترکیب اضافی، اهل کتاب اگر آمد یه معنای دیگری میده. و این من ندیدم. یعنی اولین بار دیدم یک فقیه همین نکته دقیق مطرح میکنه. و سعی میکند که شواهد هم میاره و ادله هم میاره. از این ادله به من مجبور بشم خیلی سریع رد میشم از این مطالب بله استناد میکند به این آیه و منهم امیون لا یعلمون الكتاب امیون ناظر به عرب های جزیره العرب خب در اون زمان این اصلاح امیون به اونها اطلاق میشه لا یعلمون الكتاب چون دیناتی کرایج بود در جزیره العرب اه عبادت اسنام و بتها و در مقابل دینات های الهی و آسمانی لا یعلمون الكتاب اونها یعنی اهل کتاب نیستن این آیه بقره سوره بقره آیه هفتاد و هشت یه آیه دیگری وقل للذین اوتو الكتاب والامیین ااسلمتم خطاب دو طایفه اه هم اهل کتاب یعنی اهل اه اه ادیان الهی و آسمانی و در مقابل اونها مشرکان و بتپرستان ولی امین این آیه دهم بله آل امران آیه فجعل اهل الكتاب والعلماء دہی في مقابلت الاميين و يريد بهم ابداع الاصنام من عباراتی شونه یعنی این دو طایفه در این آیات اومده و افراد که اهل ایمان و اهل دین و در مقابل اونها بت پرستان یه آیه دیگری ما يعبد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين اونجا اهل کتاب در مقابل مشرکان در سوره بقره آیه 105 اونجا ف جعل الكتاب في مقابلة الشرك اهل کتاب جدا و مشرکان جدا مورد سوم قوله تعالى كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين اني خيل جاري كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق أنزل معهم بين نسبت بي پیغمبران ميگه انزل معهم الكتاب نميگه انزل الكتاب على عيسى وموسى فقط اين مختص بيهود و نصارا نيست كتاب مال پیغمبرانه از مختصات پیغمبران الهي وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه آيه بله بقره آية بيستو سيزده ايشون ميفرماين فجعل الكتاب مائزا للنبوة وحاكما لأهل الدين في مختلف فيه ومن الواضح أن هذه صفات لعامة كتب الله تعالى يعني كتاب يك مفهوم عام شامل همية أديان إلهي خب این کتاب واژه کتاب به تنهایی اگر میاد این معنای وسیعی و گسترده دارد به خلاف چیزی که مرتکز هست در اذهان ما در اذهان ما واژه کتاب دو معنا دارد معنای اول اگر با ال اومده ال کتاب یعنی چیه یعنی قرآنه اه؟ اگر اهل کتاب اوتل کتاب یعنی یهودو نصاره اشون میگه نه خیل اختصاص نگه البته اونجا این نقاط دیگری دارد خیلی جالبه ولی نمی این بحث ای ادامه میده.شون میگه یک انصرافی هست در ازحان مسلمانان وقتی میگیم اهل کتاب یعنی یهود و نصاره ولی میگه این منشأش استعمال لغوی نیست این منشأش غلبه وجود وغلبية وجود موجب انصراف نمي شفت اين معمولا در علم وصول مدرح ميكونان جاه انصراف منشاش من استعماله غلبيه استعمال اين موجب انصرافه نقطة اصولية بسيار دقيلة اما اگر غلبية وجود خب انها خير بودن يهود ونصارى ساير ديانات شايد به ندرت در جزیره العرب این انصراف موجب انصراف نمی یعنی ما نمیتونیم آیات تفسیر کنیم بر اساس یهود و نصارا چرا؟ چون اونها زیاد بودن این اجت اصولی ایراد دارد بس این نکته که ایشون مطرح میکنه کنه نکته ترفی نیست اثری بر این نکته مترتب می شود اثر استنباطی مترتب می شود بسیم جا انصراف نیست جایی که در آیات واجه ای کتاب آمده مراد کتاب الهی کتاب الهی در مقابل ادیان دیگر مخصوص تورات و انجیل نیست مگر با قرینه قرینه اگر آمد بحث عوض میشه دیگه اگر بدون قرینه معنای و واجه کتاب واجه معناش خیلی گسترده مختص به یهود و نصاران نمیشه باید. خب این یک استدلاله استدلالش هم طولانیه حالا من خلاصش کردم ایشون باز هم ادامه میده میگه میره سراغ، روایاته میگم ما باید روایت میبینیم واجه کتاب در روایت چگونه استفاده شده میاد این روایات انقدر بحث میکند به چار بخش تقسیم میکند به چار تایفه دسته اول روایت ابی یحیا واسطی مرسله صدوق روایت اسبغ ابن نباته عن امیر مومنین سلام الله سه روایت اونجا واجه کتاب آمده در این روایات و معناش خیلی وسیعه دسته دوم اونجا نسبت به مجوز در این روایات دو روایت آورده ده دوم دو روایت معتبره ی سماعه موثقین زراری البته این موثقین زرار مزمر هم از ولی مستزل هستی امثال زراره اگر مزمره دارد معمولا خدشه وارد نمی‌شود چون از بزرگان اگر راوی از بزرگان بوده و نامه امام معصوم نمی بره میگه سألتهو قلت لهو اینجا سندش ام معتبره اما اگر راوی یک شخص عادی بوده ممکنه که از معصوم روایت میکنه و غیر از معصوم انجا اگر روایت مزمر بود نمیشه به این روایت استناد کرد شون میگه این موثقه مزمر هم بود ولی موثقه قابل اعتماد دو روایت اونجا داریم دو هم معتبر سند اینجا تصریح شده که مجوس جزء اهل کتابه و اهل کتاب خب اونجا مجوس نه یهود نه نصارا نیستن اونها بله دستایه سبوم از روایات روایاتی که مشتمل بر امری که نحوه تعامل با مجوس و نسبت به مجوس سنت اهل کتاب بر مجوس جاری می شود خب اگر اهل کتاب نبودند و اهل کتاب اونجا صدق نمی معنا چی معنا دارد چند آدم مشرک میگیم به این مشرکان احکام اهل کتاب جاری کنی بر این معناش که اونا اهل کتابن بس اینجا کتاب صدق میکنه بر این افراد دسته چهارم روایاتی که واجیه کتاب توش نیومده ببین این ظرافت و دقتی ایشون میگه این روایت مشتملی که بر اخذ جزیه دریافت جزیه و مالیات از مجوس و ما دلیل نداریم که دریافت جزیه و مالیات از کافران جز اهل کتاب همون آیه که ما اول خوندیم ولای دین و ندین الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عينه وهم صافرون. اخذ جزیه تشریح شد در این آیه و این آیه عنوان اهل کتاب آمده در این روایت واجه کتاب یا این آیه نیومده ولی حکم اخذ جزیه و دریافت در جزیه از مجوس مطرح شد در این دسته چارم از روایات ما استفاده میکنیم که منظور که انجا عنوان کتاب منطبق مشه بر مجوسه يعني انها هم اهل الكتاب حصاب مشه خب در مجموع نتجه مجرين شون ميقى ان الكتاب في مصطلح القرآن وفي لسان الاحاديث هم در كتاب هم در صننت واجه الكتاب در وحتى در عرف متشرعية ون زمان زمانه صدر اسلام بلکه حتی در زمان ائمه سلام الله عليهم در مطلق کتاب آسمانی استفاده می شود کانو استعمل في مطلق الكتاب السواوي ولا شاهد على اختصاصه في آية الجزیه بکتاب خاص جا میگه شاهیدی نداریم دلیلی نداریم که ما میگیم کتاب در آیه جزیه در سوره توبه این مختص به تورات و انجیل بس مطلق کتاب آسمانی فرض کنیم فردا اگر برامون ثابت میشه یک دیانتی مثلا بودایی یا دیانتهای در هندوستان یا کتاب داشتن هم أحكام أهل كتاب برغنام جاري مدين عسر عملي دارد إن سخن وإن نقاطك يشون فرمدان وحاصل الكلام أن الكتابة في باب الجزيان لا ينحصر في الكتابين طارات إنجيل منحصر نيسا كما لا ينحصر في الكتب المشرعين إني من نقطة دي جاري. اشون میگه شاید بعضی ها میکنن که مراد از کتاب درست معنی وسیعی مختص به تورات و انجیل نیست ولی مختص به کتابات به کتاب هایی که دارای تشریع و قانونه اما کتاب هایی که فقط توش موعظه هست و مسائل اخلاقی این شامل نمیشه مراد از کتاب بله مراد از کتاب فقط کتابی که مشتمل بر تشریعات احکام عبادات احکام معاملات احکام نکاح و طلاق و نمیدونن چیه گاه حدود هست مانند تورات تورات توش احکام هست انجیل هم جای دیده میشه برخص احکام بری عبت من با سابعه دیداری داشتم اونها کتاب های خودشون به من هدیه دادن و من نگاه کردم البته مقام معظم رهبری راجع به این کتاب صحبت کرد و سخن گفتن بعدش من این کتاب به دستم افتاددنه دیدم این مطالبی که در این کتاب آمده خیلی تفاوت ندارد با کتاب های موجوده با انجیل و تورات خیلی تفاوت فاحشی ندارد اونا ادعا میکنن مثلا این کتاب آسمان ما اینه حالا راست میکن دروغ میکن این دیگه یه چیزی متعارف این سابعه مال امروز و دیروز نیستن اونا مال صد سال چند قرن خل بودن دیانتی جدیدی که نیست یک کتاب خودشون نشستن و درست کردن به هر حال هر دیانتی اگر ثابت میشه اونا کتاب آسمانی دارند باید احکام اهل کتاب بر اونها جاری میشه ببته یک دیدگاه اجتحادی شاید به از آنم پذیرن ایراد ندارد چیزی که من میخوام انجامت رحمی میکنم بگم دقتیشون ایشون و انایت فوق العاده <سؤال> ایشون نسبت به دلیل قرآنی و دلیل کتابی چگونه یک واجه تتبع میکند در آیات در روایات میاد این روایات دستبندی میکند به چار دست و تک تک این روایت البته متنین روایت من نیوردم چون خیلی طولانی میشه بله یک نمونه دیگری یا کفایت می‌کند این نمونه کفایت می‌کند ببینیم سوره مطلب دیگر مثلا چه واجیه بیید گفتم مثلا واجیه لهو و لهو و در آیه بله آیه سوره لقمان آیشش اونجا من دربارش بحث کردم و بررسی کردم نمونه سوم واژه صابعین که در دو یا سه آیه آمده واژه ثابعین در سه آیه آمده آیه شست و دو سوره بقره ماعده شست و و آخرین آیه عجب هی بده من اکتفا میکنم به این مقدار میریم سراغ نکته دوم نکته دوم مبنای ایشون در اختلاف قرائات نه فقط اختلاف مبنو خب این اختلاف مبنا چیزی عجیب و غریبی نیست متعارف قبلا هم مطرح بوده آیا به قراءت شاز میشه فتوه داد میشه عنوان مستند قرار داد یا نمیدونیم فقط بر اساس قرائت های مشفور و معروف خب دو این چیز جدیدی نیست ولی دقتیشون در تحلیل این قراءت ها در این آیه، و من الناس من يشتري لهو ليضل عن سبيل الله ليضل ليضل المخانين يا قراءات معروفه در القران سبب شده ليضل يا قراءات اخرى ليضل ليضل الاز رباعي يملأ الاز ثلاثي لذا يضل متعدي مفعول به مي مي جري لي يضلّ الناس يعني لي الناس عن سبيل الله. إن قراءته متعارف. قراءة غير متعارف قراءتك لي يضلّ خدش جمره ميشهد ظلال متعلّقة بخد الشخص لي يضلّ ندجران جمره مي خب دو قراءت نسبت ب قراءة افضل لشون بحث نكون هاته اولا اين قراءة مالكية ميجا قراءة عاصم و شاقردان عاصم حمزة و نعفاء و ابن عامر و قراءة كسائي اين قاريان معروف و مشهور إن جريئن آيخون ذن ليضل عن سبيل الله باب ضم ليضله أما إن قرأت لي ليضله يا جلده، فيكون الفعل المتعدي ليضل منسوبا إلى فعل الاشتراع ومن الناس من يشتري له الحديث إن شخص كائن حديث من برای چی پول میده برای گمراهی دیگران بر اساس این قرارات بله و این معید میشه چون قبلا یشتری فاعلش الله ب قرینه مشترکت بس فاعلش یکی شخص که همون رفت این حدیث مزخرف خرید إن إن شخص بائس كمراهي ديگران بس فاعل جاءيكي بقرينه عطف يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعده و يقرينه ديگر دي ويتخذها وزوا اونجا فاعل در بعد از اين سفعل النيومده تسريح نشله بإن فاعل كي میگه با این قرینه مراد فاعل یک نفره بله خب نتیجه میگیریم خب این چه تأثیری دارد میگه اگر اینجوری میگیم بس این لیو الله یعنی شخص که دنبال گمراهی مردم این جزو افعال قصدیه بدون قاض محقق نمی نمی‌شود چون برخ از افعال ما قصدی نیست مثلا خوردن و خوابیدن و مانند آن این قصد نمی‌خاستیم با قصد یا بدون قصد ما می‌خوریم بالاخره سیر می‌شیم ان الله خب و اما برخ از که از ما صادر میشه با قصد محقق میشه ولی یا زوالا اگر میخواستیم به یک نفر توجیه کنیم میشه بدون قصد با قصد معمولا توهین کنیم تعمد داریم که یه عبارت های الفاظی به کار که موجب توهین این شخص و حد حرمت این شخص این آناوینه حد حرمت یا انتقام من میخوام انتقام بگیرن میشون می بدون قصد از امریکا میخوام انتقام بگیرن اگر دستم میرسه به اون ترام اگر دستم نرسید ترام، بخوام انتقام بگیرن. میشه بدون قصد ببین؟ یکی مثلا مسلم مسلمه میشه بدون قصد. لذا کالبد شکافی جزو مصلح حساب نمیشه. این قصد انتقام و توهین ندارن. در پزشکی قانون نمیخوایم انتقام بگیرن از این جنازه. اما مثله مثل کار وحشی خدا لعنتش کنه نسبت به سید الشهدا حمزه سلام الله علیه این با قصد قصد انتقام با قصد توهین قصد احانت یک سره از افعالی که ما داریم با قصد محقق میشه از افعال نخیر ربط به قصد با قصد یا بدون قصد محقق میشه مثل خوردن و خوابیدن و سایر افعال حرکاتی که ما انجام میدین ایشون فرمودن که اونجا اگر ما لیو این جسو عناوین قصدیه یعنی شخص که میاد یک شعری میخواند به هدف گمراهی دیگران به هدف کمراهی دیگران این ماننده کدوم اشعاره اشعاره که مثلا توش عشق و عاشقی و ماننده اونها و غیروه نمیشه گفت بدون قصده این با قصد این شعر حالا بعضیها وقتی از اونها سوال میکنین میگم قصد, قصد ما یه چیز دیگه انشالله رس میکن به هر حال اما آدم گاهی یه شعری میخونه برای خودش حالا به دیگران ندارد بعضی ها نمیتونن بعد بالاخره حتی وقتی خیال واش میکنن یا وراندگی میکنن بعد یه چیزی میگن بالاخره یا آوازی میخونن یه چیزیو <çukled> نمیخوان ضرری وارد میشه به دیگران برای خودشون تفریح خودشون حالا راحتن مثل سیگار کشیدن راحت میخواد یه مقدار بله راحت تا میشه سیگار میکشه اینم خدا هم میخواد بخوانه این ربط به گمراهی دیگران ندارند خب اگر ما این آیه اینجوری میخونیم لیو الله فقط افراد فاسد و فاجر و بر اساس برنامه عمل میکنن. اونها ترانه كن میخونن سرود می كن میخونن که می میخونن این حرام می شود اما اگر بر قرائت دوم لي يضل عن سبيل الله اونجا بحث فرق می کند یعنی خودش گمراه می شه خب البته بحث ادامه دارد ولی من متوقف میشم ادامه نمیدم. راجع به لام لیا بله این چی لامیه ایشوان بحث مدرح میکنند آیا لام غایت یا لام عاقبه لام غایت یعنی برمیگل به همون قصدی که الان ما توصیح دادیم اگر لام عاقبه منتهای و عاقبتی این فعل و زلال فرق میکنند راجب به این مطلب هم بحث بحث کرده و بحث بسیار جالبی و دقیق اونجامت راه نکند خب از این مطلب ما چی استفاده میکنیم نسبت به قرارت ها چیگونه ما با قرارت ها برخورد میکنیم گاهی میگیم فلانی اینجوری خونده لیوبله فلانی لیوبله سممازا چه اثری مترتد میشه معناش فرق میکنه یا فرق نمیکنه فقیه اونجا باید تأمل داشته باشد و دقیق می میبیند فرق میکنه یا فرق نمیکند مثل این آیه که معمولا ما همیشه میبینیم در کتاب ها نوشته شد حتی یطهرنه نه یا حتی یطهرنه خب نه و یا یاتهر معناش متفاوت خب ثمره فقی دارد یا ندارد امامون خب فقها میگن ثمره دارد سایر مطالب همین هم طور وقتی می رسیم به دو قرائت یا بیشتر باید می این قرائت ها ثمره فقی دارد یا ندارد و سعی می کنیم استفاده می از قراین و از شواهد و حتی از روایات ابته ما نباید اونجا احساساتی بر خود می با ادله برخص عزیزان وقتی میبینن یک روایت نسبت به تفسیر یک آیه یا نسبت به قراءت یک آیه از اهل بیت روایت ناغل میشه اونجا متمایل میشه به این محتوا محتوای این روایت اینجا نباید احساساتی احساسی صورت فنی می بینیم این روایت قبل اعتماد هست قبل اعتماد نیست دلالت هست فقط این روایت از امام صادق کفایت نمی کند این روایت از امام باقر کفایت نمی کند که ما مجبور میشیم تبعیت کنیم از این روایت یا از این قرائت شون گرد حتی قرائت های شازی هم نسبت دادن به اه اهل بیت من دیدم روایت شازه مثلا یک آیه خیلی معروفه در اول سوره مریم یریثونی و یریثو من آل يعبو. هم آیه که و که در قرآن صفت شد یریثونی و یریثو من آل يعبو. از امیر مومنین سلام الله علیه روایت شده یریثونی و یریثون من آل يعبو. این و یریثو انگار یک همزه اضافه شد شد ویرس ویرس شد ویرس حالا شاید یک تصحیف صورت گرفته به هر حال قرائت به این شکل نمیشه بزی رفته یعنی وارس ویرس وارث وارسه و فحبلی من لدون کولیان یاریتونی ویاریتون من آلیعقو یاریتونی واریتون على مسغر و ويلت مشه خب این قراءت شاز حالا به هر حال فقه باید نسبت به قراءت دقاقت میکند على عوابر مبنائی باید محکم داشته باشد به هر قراءت مشه استناد کد یا به قراءتهای مشهور به قراءت شاز البته مبنائی ایشون باید بر اساس قراءتهای مشهور عمل کنیم قراءتهای لیل مشهور و شاز یعنی ببخشید قرائت های شاز نمیشه بر اساس این قراءت عمل کرد مبنایشون ولی اکتفا نمیکنه به مبنا میاد دقیقا این قراءت مالی از کی نقل شده چگونه معیداتش چیه بعدن تفاوت هست یا نیست اثر فقهی دارد یا ندارد این عنایت خیلی لازمه همین جوری نمیشه با سرعت رج میشیم از آیات قرآن توقف کنیم واقعا این نحوه بحث و بررسیشون قابل توجه هست و ندرت دیده میشه در سایره کتابهای استدلالی فقهای امام مطلب سوم استفاده از قراین متصل و منفصل برای تعیین ظهور آیات قرآن خب چیزی جدید هم نیست بلاخره برای تعیین معنا یک آیه باید میریم سراغ قرآنه نمیشه صرف نظر کنیم از قرآنه ولی گاهی با عجله ما رد میشیم از این آیه گاهی با تأمل وبدقّة. ينمونا عن ومن الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سميل الله بغير علم ويتخذها غزوة. أولئك لهم عذاب مهين. يك مشكل ما در. استناد به این آیات. البته باید گفت اگر کتاب مکاسب شیخ باز میکنی هیچ عنوان، هیچ تیتری پیدانه میکنی به عنوان استناد به آیات. در بحث غناء البته این جزو ادله حرمت غناء. شیخ خدا رحمتش کنه در مکاسبش، مکاسب محرمش. هیچ عنوان هیچ تیتری باز نکرد هیچ حسابی و پرونده جداگانه برای آیات باز نکرد شروع میکنه، استدلال میکنه به روایات مستقیما البته نکاتی مطرح میکند درباره این آیات ولی خیلی فرق میکند گاهی با به عنوان دلیل مستقلی ما نگاه میکنید به این آیات گاهی به عنوان حالا در اثناء یک نکته مربوطه آیات ما یه چیزی میگیم در حد نیم سعتر در حدی دو سعتر خیلی بحث منطبال مقام معظم رهبری در بحث غنا انوانی و تیتری جداگانه میده به استناد به آیات آیا این آیات سه چهار آیه مدرح میکند آیا این آیات دلالت میکند بر حرمت غناء یا دلالت ندارد یه مشکل اونجا داریم مشکل که لحو الحدیث یا قول زور و این از مقوله سخن و کلام و صحبت لحو الحدیث حدیث یعنی کلام سخن خب قول زور قول یعنی سخن و کلام خب این شگون دلالت میکند بر حرمت غنا غنا کیفیت ادای صوت و صدا کیفیت تنظیم صوت غنا در واقع نحوه ادا مربوط به کیفیت ادای صدا اما سخن از مقوله کلام و معنا سخن معنا با باید داشت باشد. بلکه رنای که حرمت دارد مربوط به محتوا و معنا. اگر محتواش باطل بود این حرام نیست. اگر محتواش باطل نبود مباح بود. حالا ولو توش عشق عاشقیم باشد خب این نمیشه گفت این باطله چون عشق بلکه حرام نیست. درسته؟ میشه زندگی کل بدون خب این یه مشکل هست بالاخره قول الزور الحديث و حديث و الحدیث و مانند این آیات واجه حدیث یا واجه قول توش آمده قول حدیث دلالت بر معنا دارد به خاطر باطل بودن معنا و محتوا حرام شده و تحریم شد یا به خاطر نحوه و کیفیت ادای صدا و موسیقی در واقع موسیقی صدا به خاطر کیفیت ادا حرام شده اگر انجوری ما باید میگیم هر وقت ترانه یا سرود یا یک شعر مشتمل بر معنای فاسد و باطل شرک مثلا چیزهای مردم دعوت میکنه به کارهای حرام ولی از الله بشوربه و شراب و نمیدونم چیه و این مفاسد خب میگیم این حرامه و این یه مشکل هست ایشون میاد از قرائن مختلف استفاده میکنه که برای تفسیری این آیه نقطه اول میگه یه نقطه وجدانی هست و واقعی باید ازش استفاده کرد یه نقطه بسیار جالب انصافاً کاشف از محارت ایشون ایشون و دید عرفی ایشون ببین دقت در استنباط نه دقت فلسفی دقت فلسفی خیلی کارایی در استنباط ندارد که آنی به اما دید عرفی ما در مقابل ادله عرفی رو هستیم قرآن به زبان عرف سخن گفته روایات به زبان عرف آمده زبان عرفی باید نگاه عرفی داشته باشیم تا میتونیم این عدله مقدس روایات و آیات دقیقاً معنا کنیم و تحلیل کنیم خب یکی از این ابزار استفاده از قراین وجدانی. میگه در اون زمان صدر اسلام دقت کن اونها که در دقت این میگه در اون زمان مجالس فساد و مجالس لحو لعب رایج بوده دقت کن خیال نکنن در صدر اسلام آدم های مقدس کارشون فقط مسجد و عبادت رو چیه این بوده که بعضی ها ایراد می گرن چرا اینجوری شد, شد در زمان ما در حکومت ما نمید. مگر حکومت های سابق چی بوده بطار... تاریخ نگاه کنن بروایت مراجعه کنن خب میان سوال میکنن از ائمه آیا این مجالس لهو و لعب و ترانه و نمیدونم چیه حرمت دارد مباح حکم شیعه امام استفاده می کند از این سلیقه متشدعی و فهم عرفی میگه به نظر شما اگر از شما سوال میکنیم اگر کارها و افعال تقسیم کنیم به دو خانه یک خانه باطل و خانه حق به نظر شما این مجالس له و لعب در کدوم خانه شمرده میشه آدم مدده گفت خب این جزو باطله دیگه افرادی که معمولا تردید میکنن در این مجالس معلومه اونا چه افرادی هستن چی چیزهایی این گفته میشه چی چیزهایی که پنهان و آشکار نمیشه معموله در این مجالسه که رد و بدل پیامک های متبادل بینه در این مجالس جزب باطله گفته که هم حکمشت که همینه بس میگه اونجا یک حالته اگر به تاریخ مراجع میکنین میبینیم این مجالس مجالس فساد رایج بوده و روایات اومده مردم هدایت کنن و متفتن کنن به این انحراف اجتماعی بسیار خطرناکه لذا و مراد از این لحو الحدیث قول الزور اینطور نیست که هر سخنی بی خود و مزخرف این حرام است نه سخنی که موجب گمراهی مردم و دور کردن مردم از خدا و از راه خدا میگن از جزو روایات اسباب نزول این آیاتی که نازل شد یک شخص به نام حرس یا حارس این میاد ظاهره میاد از میاد ایران می و از اونجا کتاب قصه میخره و میبره اونجا در مقابل پیغمبر میشینه و قصه قصای معمولا قصه جذاب و مردم متاثر میشن برای در مقابل پیغمبر رقابت میکنه با پیغمبر این آیات اونجا نازل شد پس اونجا ببین این اگر در نظر میگیریم این شخص همین اینجوری نیومد در قصه تعریف میکنه برای مردم مگر قصه گویی مشکل دارد هر قصه میخواد بگی، اشکال ندارد اما این شخص میخواد مردم جذب میکنه که نمیرن سمت پیغمبر نه. خب این اینجا قصه خیلی فرق میکند اونجا یه هدف دار این کار این شخص یه کار هدفدار با قصد و با تعمد و با نقشه اونها که یک مجالس لهو برگزار میکنن این به صورت اتفاقی اتفاق نمیفته ماموران پشت این یه تراحی و پول خرج میکنن و برنامه باید داشته باش حتی در زمان قدیم اول کی میکنه چگونه میکنه از چه ساعتی در چی زمانی چی مطالب مطرح بشه به بسرطه اتفاقی نیست بر اساس نقشه و تراحیش شد دلیزا اونجا نمیشه گفت این محض که ادای صوت و ادای صدا یک ادای خاصی این موجب گمراهی مردم فقط اگر بر اساس برنامه بر اساس یه جوری راهی شده که مردم کشیده میشن از سمت دین مرن به سمت دیگری که در مقابل خداوند متعال میشن و ما میبینیم یک مجالس عروسی ساده خب معمولا اونجا دست میزنن مردم یه شعری هم میگن و بعدا تمام میشه کی میره دنبال کار خودشه داماد هم دنباره کار گده شد اما نه عروسیه اونجا یه برنامه های برگزار میکنن به نامه های خیلی قشنگ مخصوصا نامه های از استلاحات غربی استفاده میکنن نه عروسیه نه مناسبتی هست برای جشن و این چیه؟ میشه گفتی این همینجوری بسرات اتفاقی برای تفریح مردم با این تفریح مردم به داخل یه مناسبتی باید داشته باشد این موارد فرق میکنند و لحولعید مجالسه که تراهی شده و بر اساس جذب مردم به سمت شیطان و به سمت باطل و در حال رقابت با دین و تدین و مکتب و حق این نحو مجالس این نحو اداها حتی کیفیتی یک کیفیتی سادگایی یک کیفیتی تحریک کننده این ببین الان من البته نمیشه گفت من صاحب نظر نیستم ولی بیشتر تمایل دارم به عدم حرمت موسیقی و آهنگ ولی این معناش نیست که حتی این آهنگ تحریک کننده میگیم جایزه این مشخص این کمتر از محتوا نیست از خودش بصورت صورت طبیعی مردم در هدایت می به سمت مفاصل دیگه کنترل از دست میده شخص که این آهنگ میشنبه متاسفانه در صدا الان اینجوری شده به عناوین مختلف عنوان سرود و ولی آهنگ اگر آهنگ سنتی ماننده این تحریک کننده نیست اصلا دای برعکس پیرمرتا و پیرزناها گای آهنگ و های سنتی گای گوش میدن و گریه میکنن اصلاً شاید میشن چیزی به هر حال مثبت به این نکته باید ازش استفاده کنیم که سبب نزول این آیات در چه فضایی نازل شد؟ صدور روایات در چه فضای صادر شد؟ اونجا مقام معذب رهبری روی این مسائل عنایت داشتن و بهره بردن در انتخاب و تعیین دیدگاه فقیش در مسئله غنا و خوندن ترانه این مقدار کفایت میکند اگر سوالی هست، اشکالی هست، تکمیلی اگر هست، نکته خاصی در خدمت شما هستم. نزول رو بله، بله، بله، البته به صورت کل نمیشه گفتی، هر سبب نزول موجب تقلیدی، این سبب نزول این آیه. به موجه به تقییده چیه؟ همون دیگه قرینه قرینه که این شخص میخواد یک در واقع یک دکون باز کرده در مقابل پیغمبر در مقابل پیغمبر مردم در جذب کنه با هنر که داشت از این هنر استفاده می کند و که مردم نرن سراغ پیغمبر و قرآن یاد میگیرن و میشنوند میاد همچنین قصه های جالب و خیلی هم مردم این قصه ها دوست دارند قصه تاریخی مخصوصا قصه های خیالی و افثانهی از این قصه ها موجب که مردم به سمت پیغنبر نرهند خب این در واقع یک جنگ با خدا جنگ نرمه جنگ نرمه وشرعان نماینده استفاده از آیات در نشریه اهلل بسم الله الرحمن الرحیم در محدوده این مباحث که چاپ شد من بررسی کردم مبنای اول نحوه تعامل با تعیین معانی واجگان قرآنی و این تعامل باید با دقت و با سرعت و بصورت اجتهادی ببین ما اجتهاد یک اجتهاد واقعی داریم و یک اجتهاد ظاهری چون برخ از گاهی در برخ از موارد متأثر میشن به های پیشین و نظریات رایجه مثلا در این مورد بحث کتاب علامه حلی در منتهی المطلع میگه اجماع امامیه و اجماع فقها مراد از کتاب تورات و انجیل اجماع ایشون مثلا بی این اجماع خیلی توجه نمی کند میره سراغ این اجماع میدونید اجماع منغوله دومن اجماع مدرکی. خب وقتی خود قرآن در دست ما هست میریم سراغ قرآن میریم سراغ آیاته بررسی می‌کنیم. آیا واقعاً واقعا همچین مطلبی میشه ثابت کرد که کتاب منظور از کتاب یعنی تورات و انجیل یا عم بعدن ایشون نقطه که اضافه میکنن میگه میکن فرق هست بین واجه کتاب اگر به تنها میاد با واجه اهل کتاب این نقطه که من ندیدم در جای دیگری به هر حال حتی اگر جای دیگر ما میبینیم این معناش نیست که این ارزش این نکته مثلا میاد پایین چون دیگران گفتند شاید یک فقیهی در یک کتابی هم چین نکته مطرح کرد ولی در کتابهای رسمی ما من ندیدم چین مطلبی که این دقت در کشف معنای یک واژه خیلی مختصر تبي ان بذ احمد میکشه برای تعیین معنای این واژه بانی مبنی دوم که عرض نسبت به قرائات قرائات قران و اختلاف قرائات و توزیع داوودم قابل قبول نیست و نمیشبر اساس فتوا داد و عرض کردم مبنای کلی به این مبنای کلی ایشون اکتفا نمی کند آیا تفاوت حسمی میان ها یا نیست یعنی سمره فقهی دارد یا ندارد بعدن میره سراغ قرائین کدوم قراءت رجحان دارد اکتفا نمی کرد اول میگه این مشهور بر اساس قرائت مشهور فتوا می اینشون میره میگه مؤیدات این قرائن مشهور چی مؤید دارد یا ندارد تک تک این قرائن بررسی می خب اینیم مطلب مطلب دیگری این یا خب مطلب نحوه استفاده از قرائن متصل و منفصل برای کشف و تعیین ظهور ظهور یک آیه خیلی بحث جالب ولی متاسفانه فرصت نیست برای ارائه یک نیمونه کامل مبنای چارم سقف دلالت یک آیه تا کجا این خیلی مهمه گاهی یک معنا ما انتخاب میکنیم میگیم معنای این آیه اینه ولی سقفش تا کجا این خیلی مهمه مثلا این آیه و این جنحول السلمی فجنح لها این میشه ازش استفاده کرد معاهده و قرارداد سلح با دشمن مشروط به درخواست دشمن یا مشروط نیست میشه مسلمانان ابتدای دولت اسلامی ابتداا پیشنهاد صلح خودش مطرح میکنه یا چون بعضیا آمدن گفتن و ان جنحول السلم فجنه مشروطه اگر اونها کفار و دشمنان اونها اگر از شما درخواست کردند تمایل داشتن به صلح شما پذیر این پیشنهاده اگر خود دولت اسلام تدائن میتونه پیشنهاد یا نمیتونه خیلی مسئله مهم ارتباط دارد به تعیین سقف این آیا آیا این به عنوان شرطه و اگر هم شرط میپذیر معناش چیه جنحو یعنی چی پیشنهاد دادن بگه اصلا جنحو معنی پیشنهاد نیست اتبا. نمید بگه اگر پیشنهاد دادن با تفسیری مشهور ایشون مخالفه بله فرصت هست دیگه یا کفایت میکنه این مقدار سوال حد بررسی که ما انجام دادیم مقاصد الشریعه با تعریفی که رایج هست ایشون قائل نیستن ولی ایشون به مقاصد توجه دارد به مقاصد آیات و میره سراغ قرائن از قرائن استفاده می هدف آیات ا خیلی به هدف آیات عنایت داشتن ولی این غیر از مبنای مقاصد الشریعه یه چیزی دیگه ای بود. و استغفر الله العظيم ب... خیلی تاکید دارن مثلا که دولت اسلامی یا حکومت اسلامی باید امنیت ایجاد کنه باید رفاه ایجاد کنه باید عدالت ایجاد بکنه. و حالا بعد این مواردی که هست این خودش نیست اون مقاصد الشریعه نیست که در واقع ما با این اقامه در ضرر اونجا رسیدیم میشه بر اساس با قصد الشریعه میشه بر اساس ادله سنتی خودمون انش ثابت کرد اصلا میشه ما استفاده کنیم چون ایشون اینجوری چیکت فرمودن این معنیش که مبنایشون مقاصد الشریعه نه. بر اساس همون ادله سنتی ما میتونیم این به این نظریات کلان میتونیم برسیم. تحت فقه نظام یعنی در فقه نظام فقه بر اساس کشف فقه نظام میتونیم تصور کنیم از منظر نظام اسلامی چن لایه داریم و چند سنگر داریم چند مرحله داریم بالاخره این بر اساس فقه سنتی نه فقه سنتی فقه متحجب نه میکن بر اساس هون اصولی متعارف ولو در فقه متعارف مطرح نیست بانوان فقه نظام در فقه متعارف ولی مشه از قواعد اصولی میشه استفاده کرد. البته این بحث یک لقانه بله. استفاده. نه؟ نه این یه مبنای اصولی متفاوته. وش نختنشده و جانی افتاده. یعنی هنوز از جهت اصولی فزیر مقاصد الشریعه. که به عنوان منبع استنباط. نه نه نه ما استفاده میکنیم از همون ادله لبی و لفظی استفاده میکنیم برای یک ترراحی خاص نسبت به حکومت اسلامی در عرصه امنیتی در عرصه دفاعی در عرصه آموزشی و فرهنگی و سایر عرصه ها این میشه و این وقتی میگم میشه این یه چیزی آرزو نیست ها ما انجام دادیم و در حال کشف این مطالب، یعنی در کار میکنیم. اگر نیست مثلا به یک آرزو میکنیم انشاالله.